مراجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله تاهرین خدمت عزیزان و جانشین‌های خودم عرض سلام دارم صبح خیر عرض می‌کنم الله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و از هر گونه آفتی هم به دور بحث ما در تقسیمی که نسبت به تشبیه در جلسه قبلمون کردیم تشبیه رو تقسیم کردیم به دو دسته یکی تشبیه مفرد که گفتیم رسم قالب زیاده چون راحت و بیشتر استفاده میشه تشبیه مفرد و دیگری تشبیه تمثیلی گفتیم تشبیه مفرد رو تشبیه غیر مرکب و غیر تمثیلی هم بیگن و گفتیم تشبیه تمثیلی رو تشبیه مرکب و غیر مفرد هم میگه گفتیم تشبیه مفرد اونیه که وجه شبه درش هیئت نیست ولو متعدد باشه دو تا سه تا وچه شبه داره مجموعه و سکانس تشکیل نمیده هیئت، صورت، حالت گفتیم نیست این تشبیه مفرد. بلا متعدد باشه وچه تشبیه رو گفتیم وچه شبه توش حیعت صورت مجموع است حالت این ها اصطلاحاتی که به کار و چون وچه شبه از مشبه و مشبه به که متعدد هستند گرفته میشه پس در تشبیه تمثیلی،, تشبیه تمثیلی مشبه و مشبه هم به هم صورتن. هیعتن. یعنی صورت مشبه به صورت مشبه هم به تشبیح میشه و صورتی است که محضوب را میشه و از مجموع این فهمیده میشه مثال های متعددی را هم برای شما زدیم و دیگه جایی حتی برای اینکه شما بخواهید اصلا در این رابطه شک و شبهه داشته باشید و مطلب رو خوب نگرفته باشید نیست ما مثال هایی برای شما زدیم یه مثال دیگه من براتون میزنم که حالا این مبحث تمام بشه بعد وارد بحث جدید امون بشه توی تمارین کتاب تمرین ها درست تو توی تمرین گروه دو تمرین گروه دو بعد مثال مثلا سیزده رو نگاه کنید مثال سیزده هم آیه از قرآن رو مثال میزنه که آیه تو سوره عرافه و آیات سد حدودا، این هست و قال تعالی بسم الله الرحمن الرحیم بطل عليهم علیهم نبع لذی آتیناه و آیاتنا میگه پیغمبر تلاوت کن بر اینها نبع نبع یعنی خبر مهم خبر مهم کسی رو که ما بهش آیاتمون رو دادیم یعنی خبر کسی که ما انایت زیادی بهش داشتیم آیات الهی رو بهش دادیم میگه یه نفری بود ما الطاف خودمون آیات خودمون ها به او دادیم او دستش باز بود حتی کراماتی به او داشتیم اینو اون از یاران حضرت موسی بوده عالم بوده اسمش بلعم باورا با بعد این بلعم باورا با که از اقوام موسا هم بوده عالم بوده و به پیروی از موسا بوده خب خداوندم بهش انایت کرده بهش داد آیاتنا علَّا <الزی> زِي آتِ آ... پایِ مِعَلَّا <میگه> زِی آتِین آه آیاتِنا، اسرائیل، او علم باعَزِ کُتُبِ الله، علم که تابِ رو خدا بهش داد. فن سلاحِ منها، اما این شایستگی نداش، انسَلَخَمِنِها، مسلَخَه یعنی پستش کن، انسَلَخَمِنِها یعنی از این آیات در اومد مثل ماری که از پوست در میاد این از این آیات اومد بیرون ما آیات رو داده بودیم انگار مثل یه روکشیر رو. او رو پوشنده بود اما این آیات در اون نفوذ نکرده بود ولی مو از این آیات خودش کشید بیرون آیات ما رو گذاشت کنار فان سلاخا از این آیات اونها بیرون فان سلاخا منها یعنی خارج از آیات و انکفر ها خارج شد از این آیات مثل گفتم ماریک از پوست در بیاد، میگن این سلخته لحییتون. این از پوست شما رو شیطان خب معلومه اون آیات که بود شیطان بهش نزدیک نمیشد. وقتی از آیات اومد بیرون شیطان اومد سراخش. فعطفه شیطان شیطان دنبالش راب داد. من امنالغاوین شد از آدم های از خیه یعنی گمراه از گمراهان و بیشاردان شد خب خبرش اینه دیگه این خیلی مهمه یا عالم مستجاب و دعوه کسی که صاحب کراماتی شده بوده زده زیر علم خودش فاسد شده خداوند هم او رو رها کرده شیطان اومده او رو قاف و جز گمراهان شد بعد خدا میگه اگه ما میخواستیم نظریم گمراه بشه به زور این کارو میکردیم ولی قصه ما این نیست ما هیچکسی رو به زور نگر نمیداریم ولو شعنا لرفعناه به ها با لو میگه که شرط مازی ممتنع اگه میخواستیم یعنی نخواستیم اگه میخواستیم لرفعناهو به ها حتما او رو با همون آیات بالا میبردیم حتما اوش آیات آدم میبره بالا اگه میخواستیم رو با اون آیات بالا میبردیم به زور ولی کار ما به زور بالا بردن نیست چرا؟ ولکن لهو اخلده الاله ارس ما این کار نکردیم چون ولکن لهو چون او اخلده الاله ارس چسبید به زمین او به زمین صرف چسبیده بود خب نمیتونست به بالا بره یعنی کسی که انحراف رو پذیرفت به صلاح و خیر حرکت نمیکنه کنه اخلده علال یعنی مال علال دنیا و حتامها یعنی تمایل پیدا کرده به دنیا و حتام یعنی چیز بیارزش دنیا ولی او چسبید به دنیا و تبع هوا و تبعیت کرد از هواحوست خودش چون به چسبید به دنیا باید هواحوست تبعیت کنید خب تموشد الان اینجا اینو گفت بعد میگه فمسلهو مسلهو یعنی حیعتو بنابراین ایفا یعنی بنابراین بنابراین مسلهو یعنی حیعتو شعنهو شعنش چیه؟ یک عالمی که از اقوام حضرت موسا بوده در کنار حضرت موسی تورات را آموخته عبادت های زیاد کرده خداوند بهش انایتی کرده و او صاحب کراماتی شده حتی میگن مستجاب و دعوه بوده دعا میکرده استشابت پیدا میکرده بعد منحرف شده خداوند به خاطر انحرافش او رو به تسترین شکل برگردونده رهاش کرده شیطان اومده هر جوری میخواسته از او سواری گرفته دیگه هر گونه فسادی رو انجام میدهده این الان هیئت مشبهه مس مثل این مثل چی میمونه الان؟ هیت این میگه که مسیل مثل هیئت یک سگ هاره چون بعدا که سفتشون میگه معلوم چ سگه سگه هاره مثل یک سگ هار است اما نه تشبیه به یه سگ هار کرده باش شما هیئت مثل هیئت یک سگ هاری است این تحمل علیه که اگر تو بهش حمله کنی هجوم کنی یل هست یلحسو یعنی زبونشو در میاره و پارس میکنه آماده حمله است حس. او تطرقه و اگه ولشم بکنی کاری به کارش هم تو را تو بگیری بری یلحسو باز او حمله میکنه میگه مثل سگه هاری شده که دیگه الان این سگه هار سگه هار نباشه قابل استفاده است انوال مردم رو حفاظت میکنه گلر رو حفاظت میکنه ها صاحبش رو ازش نگهبانی میکنه سگ کسی رو اذیت نمیکنه اما اگه سگ هار شد ها سگ هار شد اون موقع دیگه هیچ فایده ای نداره تو سر به سرش بذاری به در نمیخوره سر به سرش هم نزنی بازم میاد بازم به در در بیاره یعنی الان تشویش شده به یه سگ هار با این حیعت که یکی بهش حمله میکنه انگلکش میکنه اون شروع میکنه به وقف کردن کسی کاری به کارش نداره باز پاچه میگیره دیگه میگه این عالمی هم که الان اینطور شده همین طوره ها هر کیو ببینه یه نوعی انگلکش میکنه آزار ازیت انحرافی بهش میرسونه کمسل الکلب انتحمل علیه یلحس اوتت یل هست، بس شبه هست شده بس شبه چیه؟ بس اینه که یک موجودی از آنچه که ذاتیات او و صلاح او بوده خارج شده و الان چون خارج شده عوامل بیرونی فاسد بر او تاثیرگذار شدند این الان دیگه فاسده دیگه فرقی براش نمیکنه که طرف مقابلش با او از در صلح است سالم است یا نه فاسد است و با او درگیر است خوب است یا بد است به همه آسیب میرسونه این وچه شبه در اون عالمه هست در این سگه هم هست ولی در سگه هار آشکارتره. خطرش کاملا واضح آدم میبینه لذا شده هیئت مشتبهان او تطرکوین هست میگه ذالکه مثل القوم لذینه کذبون این شنه موقعیت کسانی نیست که تکذیب آیات الهی رو کنن آیاتو بهشون بدی تکذیب کنن در میان به این, این نیست که اگر تکذیب کردند و کافر شدن آدم های خونسایی میمونن نه نه مزرخ میشن زالکه مثل القوم لذینه که از زبو به آیاتنا فقص و سل قصص لعلهم لهم القصص یعنی این مقصوص الفلام داره پس میگه ای بیغم بر این قصص رو برا مردم بگو لعلهم لهم یتفک به امید این که تفکر کند که خداوند آمده تشبیه تمثیلی زیبایی رو اینجا بیان کرد. خب ببینید یه تشبیه تمثیلی بود شما هم دیدید یکی دیگه هم باز من در قرآن کماثال الحمار براتون از سوره جمل مثال زدم. دیگه شما تشبیه تمثیلی رو کاملا متوجه شدید و فهمیدید. خب بریم سر درس امروز. تشبیه از یک لحاظ دیگه تقسیم میشه یعنی کل تشبیه با یه دیدگاه دیگه تقسیم میشه به تشبیه سریع و تشبیه ضمنی تشبیه سریع و تشبیه تمام این تشبیهاتی که شما سابق خوندید همه اینایی که سابق خوندید گفتن بهشون تشبیه سریع چرا؟ چون مشبه توش بود مشبه هم به هم توش بود که گفتیم لابد دست از این طرفین تشبیه اگر نباشنم تقدیر میگیریم عدات تشبیه و شبه هم گاهی بودن گاهی نبودن که اگه نبودن تشبیه تقفیت میشد و بودند. آ؟ یعنی قالب قالب تشبیه بود مثل همین مسله هو که ئله کللب خب مسئله هو شد مشببه که مسئ کاف شد اعداد تشبیح مسله کللب مشب به هم ب و بچهشب هم که گفتیم که هیت از تو محصود این تش... شکل تشکل تشبویر داره این حال رو میگن تشبویح سریع یعنی شما طرف این تشبویر رو میتونید توش ببینید و کاملا دارید طرف این تشبیه و ولو به شکل تقدیری عدات تشبیه و بزشبه همگاهی هزگاهی نیست طبق قالب تشبیه ها را قالب تشبیه رو هم براتون توضیح خواهید همین چیزایی که دید اما تشبیه زمنی چیه؟ تشبیه زمنی نسبت به تشبیه سری تشبیه زمنی نسبت به تشبیه ز... سریع کمتره آه. چون یه مقداری باز سطح بالاتری از لحاظ ادبی میخواد آه. از این لحاظ بالاتره و تشبیه زمی در واقع نوعی از لحاظ فرهنگی بالاتر از تشبیه سریع تشبیه سریع همه میگن این مثل این مثل این مثل اینه تشبیه میکنن ولی تشبیه زمی ساختار جدایی داره حالا تشبیه زمنی پس کمیتره و یه ساختار جدایی داره از سطح ادبی بالاتری هم مثل تشبیه تمثیلی که اینو گفتیم برتری داره یعنی یه نوع, نوع ببینید تشبیه زمنی یه تعریفی داره که ما میخونیم ولی یک ساختاری داره من براتون بیان میکنم بنویسید تشبیه زمینی دارای دو جزه تشبیه زمینی در کلام دارای دو جزه دو جزه حالا این دو جزء ممکنه که مثل مثلا فعل و شرط و جواب و شرط باشن دو تا جمله اینطوری یا مثل دو تا جمله جدا از هم باشن یعنی دارای دو جزءه تشبیه زمنی داره دوتا جزء دوتا جمله است او در جزء اول ما چیزی رو به مشبه نسبت میدیم در جزء اول ما چیزی رو به مشبه نسبت میدیم و این چیز غریب است غریب با غین یعنی یه مقدار جای تعجب داره. م? پس در جزء اول امر غریبی را به مشابه نسبت میدیم یعنی اون چیزی که اگر بخوام تشبیه درست کنیم میشه مشابه. والله توی تشبیه زمینی شما مشابه مشبع اون به این چیزها رو به شکل تشبیهی نمی‌بینید. تشبیه در زمینه شه. یعنی اگه بندازی تو لوله آزمایش آه. بندازی تو لوله آزمایش میتونی از توش تشبیه در بیاری بگینا تعیزیش کردیم شد تشبیه و الا به شکل تشبیه دو دوتا جمله جدا از همه یا یه فعل شرط و یه جواب شرط یعنی اصلا شکل تشبیهی در ظاهر نداره تشبیه زمین تو جز اول ما چیزی رو به مشبه نسبت میدیم اینکه میگیم به مشبه نگید که شما که میگفتیم نه منظوری که اگه انداختیم تو آزمایش تصویر درست کردیم میبینیم این مشبهه این تو جزء اول واقع شده یه چیزی رو ما بهش نسبت دادیم که غریبه پس این میشه در جزء اول درست شد امر غریبی رو به مشبه نسبت میدیم و جزء دوم آورده میشه و در آن جز دلیلی رو برای از بین بردن قرابت از مشبه اقامه میکنیم پس تو جزء اول یه امر غریبی رو به مشبه نسبت میدیم تو جزء دوم تو جزء دوم دلیل میاریم بر اینکه این مطلب غریب نیست این مطلب غریب بگید نیست با غین یعنی چیز عجیبی نیست پس تشبیه ضمنی چند تا جزء داره دو جزء تو جز اول امر غریبی رو به مشبه نسبت میدیم تو جز دوم برای ازاله قرابت رفع قرابت دلیل و برهان میاریم تو جز دوم دلیل و برهان میاریم این راه شناخت این تشبیه زمینیست است. باشه؟ حالا نگاه کنید خود ایشون چی گفته توی قاعده درس میگه و الزمنی تشبیح تشبیهون تشبیهییه که لا یوضعو فیه المشبه و المشبه و به فی صورت منصور صور التشبیه المعروفت مشبه و مشبه و به که طرفین تشبیهه در شکلی از اشکال تشبیه معروف شما نمیبینید این اصلا از اشکال تعریف مشهوری نیست که به شکل مبتدا خبرن زیدون کل اسد زیدون اسد اینجوری نمیبینید لا یوزع فیه المشبه والمشبه به فی صورت منصوره تشبیه المعروفت میگه پس چطوریه میگه بل یول مهان یحسان بلکه احساس میشن ف ترکیب در کل عبارت یعنی کل عبارتو میندازی تو لوله آزمایش تجزیهش میکنی از توش تشویر در میاد میگه ای اینو به این تشبیح کرده اینم بچه شبهشه تو این مورد بلیل محان فت ترکیب و هازنو و اینو از تشبیه زمینی یو بهی آورده میشه لیوفیده تا اینکه افاده کند ان الحكم المشبه. این اینکه اون حکمی اون مطلبی اون عمر قریبی که اسناد داده شده به مشبه دو اول ممکنه ممکنه اما چیزی که من گفتم این نوع از تشبیه آورده میشه برای اینکه افاده کنه اون حکم و اون مطلبی که اسناد داده شده به مشبه ممکنه قرابت نداره فقط جزء داره تو جزء اولی امر غریبی رو به مشبّه مشبّه فرضی نسبت میدیم تو دو جزء دوم دلیل و برهان برا اون میاریم تو دو جزء دوم بگید دلیل و برهان براش میاریم این ام شدنیه قرابت نه مشخص حالا دیگه بعدش باید 20 تا مثال بزنید یه تعدادی مثال که بزنیم شما دیگه راحت میتونید مطلب رو بفهمید برای که حالا ببینم من چند تا مثال براتون بزنم ده تا ده تا مثال خوبه دیگه بعد مطلب رو بخ... خوبه اگر یک کسی یاد نگره فدایی سر همه شما یه دل از این که نمیشه تمرینات رو بیارید تمرینات نگاه کنید تمرین چهار یعنی تمرینات گروه یک، تمرین چهار میگه و ما آنها منهم هم، متنبی میگه. میگه و ما آنها من هم. من از جنس مردم نیستم، ما, ما آنها من هم. به نعایش فیهمو به واسطه این که دارم با این مردم زندگی میکنم میخرم میفروشم باشون سلام علیک دارم تو این مردم هستم من به واسطه این که دارم با اینا زندگی میکنم این دلیل نمیشه من از جنس این مردم من تاحتیwith جدا بافتم چی گفتم من کجا با این مردم کجا گرچه من مجبورم با این مردم سلام علیک کنم و باشون زندگی کنم ولی زندگی کردن من با این مردم دلیل نمیشه که من از جنس این مردم باشم. یه چیزی رو نسبت داد بگید به خودش اینکه چی که من در بین مردم هستم ولی از جنس مردم نیستم. ش گفت من در بین مردم هستم ولی از جنس اونها نیستم تافته جدا بافته. این خب امر غریبیه دیگه که یه کسی با مردم داره زندگی میکنه شکل و مردم رو داره ولی میگن من کجا و اونا کجا بعد میگه چی ولکن معدن و زهبه ار روغامو یعنی خاک ار یعنی خاک معدن یعنی فلز میگه ولی فلز طلا خاک یعنی داخل خاکه و می میگه شما نگاه کنید توی این معادن طلا نگاه اونکن گه کوه خاک کوهه کوه خاک ور میدارن اینو میارن میشورن میشورن به قول خودمون یه تون خاک رو قلق میکنن و میشورن و تقلیز میکنن و غیره از توش سه چار گرم ترها تون خاک رو. این یه تون خاک این طلا کجا بود؟ تو دل همین خاک لابلای همین خاک بود دیگه ها نگاه نگم که می کنم ولی وقتی که جدا شد این شد طلا اون شد خاک اونا ریختن دور این طلا شد با ارزشو گرمی کلا یعنی همونطور که طلا در دل خاک است و از جنس خاک دیده میشه تو معدن منم در دل این مردمان هستم الان با این مردم زندگی میکنم از جنس اینا دیده میشم ولی همونطور که طلا خاک نیست وقتی که به تو عادی نگاه بشه بهش من هم از جنس این مردم نیستم حالا این دلیل آورد یا نه گفت طلا تو معدن تو دل خاکه طلا خاک حساب میشه طلا خاک حساب میشه گفتن نه گفت منم در بین این مردم هستم خودشو به چی تشبیه کرد؟ به طلا در ارزش بودن بقیه مردم به به چی تشبیه کرد؟ به خاک ارزش بودن آه بعد گفت من در دل این مردم اول کدومه و ما انا هم, هم یه جمله ماستقید یه مطلبی. جوز دوم دلیل آورد. گفت همونطور که طلا توی خاک هست و خاک محسوب نمیشه منم در بین این مردم هستم و از جنس این مردم محسوب نمیشم پس قرابت ندارند چون؟ ولکن معدن و زهبه ار روغام و پایین میگه ار روغام اتراب ول مقصود و فلبیت منظورش در شعر این شبیه مردم نیست الوزین یعیشو بینهم که بین مردم داره باشون زندگی. خب این اول دیرید که یه دونه. دو تا جمله مستقل نمید. سه رو نگاه کنید. باز متنبیه. میگه لا یعجبن مزیمن حسن و بزتی. عجبه یعنی شیفته کرد. مزیم اسم مفعوله از زامه زامه یعنی زلم از ظلم کرد مزیم یعنی مظلوم تو سریخور دزه یعنی لباس اصلا بزاز از این کلمه است چی میگه؟ میگه لای یعجبن نه. شیفته نکند شیفته نکند لای ناهی است بادنون تاکید. مزیمن آدم تو سریخور رو حسن و به ذتی زیبایی لباسش یه نفر مظلوم تو سریخور باشه در جایی توهیم بهش بکنن عذیت بشه شخصیتش رو لگت مال کنن آه. تو سریخور اما یه لباس شیک بهش بدن به پوشه شلوار قیمتی، کفش قیمتی با لباس زیبا میگه مردشون شدون لبا. لباستون رو ببره با این اخلاهاتون نخواستن برد میکنه میره میگه هیچ موقع شیفته نمی لباس زیبا اون تو سری خفت اون که توهین به شخصیتش میشه یه مطلع گفتی. ولی خب این یه مقدار امر غریبه میگه حالا یه نداره توحیم کرد کرد لباس زیبا داره دیگه یه لباسی اون قیمت فلان و یه شاید شیفته کن لباس زیبا هم رو گلو بزنه لباسی گمون قیمت زیبا. دلیل میارد چون لباس زیبا اسباب گل خوردن میگه وحل یروغو دفینن جودتال کفلی وحل یروق یروق یعنی یعجب آیا شیفته میکنه این استفهام در معنای نفیه یعنی لا ایرو شیفته نمیکنه زیرا شیفته نمیکنه دفین دفین فاعل به معنای مفعوله یعنی مطفون مطفون یعنی مرده دفن شده میگه زیرا شیفته نمیکنه انسانی که دفن شده در قبر گذاشته شده یعنی مرده شیفته نمیکنه مرده رو جودت القفت جوده از جاییت که میگید یعنی خوب درجه یک بوده کفنش میگه تا حالا دیدید یه مرده بخندی کیف کنه چون کفنش مثلا برد یمانیه چه کفنی به ما دادن کیف کنه از کفنش میگه همونطور که مرده از کفنی که خیلی خیلی خوبه برده یمانیه کیف نمیکنه آه آدم تو سری خور هم از لباس زیبا بگید کیف و قرار رو برداشت ولی توی یه تشبیه اگه نگاه کنی چیو بهش تشبیه کرد ها انسان تو سری رو تشبیه کرد به مرده در این که زیبایی او رو شیفته از مفهومش معلوم میشه انسان غیر تو سری آقا و با شرف تشبیه شده به زنده که لباس زیبا او رو به برش بیمه اما هیچ کدوم از این تشبیهات رو شما در زند احساس میکنید و هیچ کنون رو در ظاهر به شکلی که بگیدیم مشبه این مشبه به عداد تشبیه وشبه به اندازه دولوی آزمایش در میاد المزیمو کلمتفونه کدفینه فی عدم اله احساس بلجودته در عدم احساس به زیبایی و قشنگی انسان تو سریخور مثل است باز دوتا جمله بود دیدید لا یعجبن من حسن لذته و هل یلوق و دفینن جودتال کفن المزیم یعنی المظلوم و البزه لباس و راغه و یعنی حجبه خب دوتا سه با می رو کن دوشو می خونه. باز مال متنبی و من الخیره بط و سیب که اند جنبه اول من خیره بط و سعی میگه یکی از خیرات و برکات بط کندی کند بودن عطا صیب یعنی عطا کرم اطا و کرم تو نسبت به من میگه یکی از خیرات اینه که تو لطفت عطات کرمت به من دیر میرسه همه دنبال اینن که وامشون رو زود بگیرن یا دیر بگیرن زود بگیرن همه دنبال اینن که طلبشون رو زود بگیرن یا دیر بگیرن جایزش زود بگیرن یا دیر بگیرن زود دیگه همه دنبال اینن که زود به خواستشون برسن این میگه خیر در اینه که تو به من دیر برسه تو چی بگو قریبی بگو میگه یکی از خیرات کند بودن عطای تو هست نسبت بودن گفت یا نه؟ میگه قریبه دیگه برایش دلیل میاره ببین جمله دوم توی این دوتا دیگه عطف نشده واقع نداره یه جمله مستنفه هست اون این دو جوزه داره دیگه اصره و صحبه فل مسیره مسیر یعنی سیر مستر میمیه حرکت کردن اسرع یعنی سریع ترین از صحب جمع صحابه یعنی ابرها میگه زیرا سریع ترین عبرها در حرکت کردن عبر جهامه عبر جهامو از جهامون مقتدای معافل اصرع و صحب خبر ما ابر جهام سریع ترین ابرهاس در حرکت کردن خیلی سریع زود نه عبر جهان کدومه؟ این عبر که شما مثلا تو تابستان یا مثلا عوائل پایزی مقام میبینید یه لکه های سفید عبر تو آسمونه یه لکه سفید عبر تو آسمونه سر رو بلند میکنیم این باد بردشت سریع میره حرکتش خیلی سریع نه بارونی داره نه و برکتی میاره هیچ. اما اون عبرهایی که باران داره زمین رو میکنه، کنه سبسی ایجاد که اونا دیدیم تار اصلا حرکت نمی کن بالای سروایی نیسته عطا و کرم رو به دیگه گفته عطا و کرمی که زود میرسه رسه میاد و غیره مثل عبر جهامه چیز توش نیست نواره هم چهار تا بارون باران نوزی اوقات کرد تو اوایل پاییز یا مثلا تو تابستان یه لکه ابری یه چند تا قطر بارون میندازه همین اما اون عبری که کند میاد تا برس آسمون رو بپوشونه، سیاهه حرکت نمیکنه، دیر میاد این عبر بارونه خوبی داره. حالا میگه من کندی عطای تو رو میخوام چون عطای کند تو مثل بگید ابر سیاهی که کند در میکنه و بارداره اون عطاهایی که سریع داده میشه و چیه چی چیزی یه چیزی که دو تا سکه هستند به پارت میکنن، چیز خاصی توش در عطا اونو تشویر کرده به بارانی که غیر جهانه، ابری که غیر جهانه، ابر بارانزای تیره. و من الخیر بود پس میشه که کند باشه اما خیر باشه مثل عبر سیاه که کند از در حرکت اما باران دار و میشه تند باشه و خیر توش نباشه مثل ابر جهام که تنده ولی بارانی توش نیست درست شد از سیب العطا ول جهام از لا ما و یقولو بط و وصول عطایک کندی رسیدن عطایتو به من خیران لی خوب است برای من و یقیم البرهان و بر این چیزی که نسبت داده به عطای او که خیریت باشه برهانی رو داره اقامه میکنه قشنگ بود سه تا درسته نگاه کنین مثال پنجمش شیشمش میگه تزده مول قصاد و فیبا بهی تزده مول قصاد و فیبا بهی قصاد جمع قاصد یعنی درخواست کننده قصد کننده یعنی سائل تزده یعنی ازدهام میکنن ازدهام میکنند تمامی قاصدان درست شد فی بابیهی دم در خونه این گفت هر کیو میبینی گداست نیازمنده پشت در خونه اینه همه پشت در خونه اینجا میشن چیز عجیبی گفت ها یعنی مردم همه درها رو ول کردن به هیچ کسی مراجعه ندارن جزید تزده ملغستاد و فی بابیهی گلیل بیاره که چرا همه اومدن پشت در خونه این موقع امری عجیبیه همه یه جا جمع شدن جواب میده ولمن از ببین یه جمله است ملمن حلول الزهام منهل یعنی چشمه ازب یعنی گودارا کثیر الزهام زهام یعنی مзоваهمت مستر دوم و یوزاهم و مزاهمتن و زهامن فهمیدید چی گفت؟ میگه چون چشمه ای که آدش گواراست سرش دعواز ازدهام سرش خیلی زیاد بعد اینو میگه شمایی ها خونه اینو تشبیه کرده به چشمه گوارا که سرش دعواز بقیه خونه ها مثل چشمه که آب شور داره آب تلخ داره حیوانات هم نمیرن تشبیه تشبیه هست و جز دوم دلیل و برهان هست برای اون چیزی که نسبت داده تو جز اول و عمر غریب بوده میگه همه دور خونه جمع همشن چرا؟ این یه چیز عجیبیه میگه بله به خاطر اینه که اینجا محل کرمه چون چشمه گوارا ازدهام سرش خیلی خیلی وجود داره. ول من, من حل و لعظم و کسی را ازدهام دوست شد چند تا خودیم؟ یک دو سه چه یکی دیگه هم بخونم توی تمرین های قسمت سوم درست شد تو تمرین های قسمت سوم تمرین سومش باز شعر متنبیه دست دارم می خوم باز شعر متنبی نگاه کنید میگه فعن تفوق انام و انت منهم و ان تفوق انام و انت, انت منهم میگه مثل همون شعر اولمون از در محوا فاق یافوق یعنی برتری یافت فوقانیت یافت ان تفوق انام انام یعنی ناس مردم میگه اگر تو برتری یابی تفوق بوده شده تفوق اگر تو برتری یابی بر همه مردم و انتم هم در حالی که تو هم از جنس میگه آدم از چی تشکیل شده انسان از لحم و شحم و دم و از گوشت و لحم دم خون شحم پی و دنبه از وستخون این تاست دیگه هر که بیندازن لازم تو لازمایش این چارتا از توش در میاد لحم و دم و شحم و ازم حالا یکی لحمش بیشتره یکی شحمش بیشتره یکی متناسبه خلاص همه همین این چارتا رو دارم تو هم مثل مردم است. لحم و ازم و دم و شحم اما تو کجا و مردم کجا اه. یه چیزی گفتا تو سلولات گروم و همه چیز مثل مردمه تو از جنس مردم ولی تو از مردم بالاتر، تو از مردم بالتری نسبت داد بش فا انت فوقه و انتم این هم این جزء دومه. ولی این بیت با اون قبلی ها فرق اون قبلی دو تا جمله بودن حالا یا به هم عطف شده بودن یا نشده بودن دو جمله مستقل اما اینجا نگاه کن یکیش فعل شرطه انطلاق الان یکیش جزای شرطه که جمله اسمیه از با با اومده اون دو جزء داشت داشت میگه فئم نل مسکه بعض دم القزال مسک یعنی مشک مشک بعض دم القزال قزال یعنی آهو آهو رو شکار میکنن سرشو میبردن بعد مثل گوسفند دیدید آویزون میکنن که خون هرچی از توی اعضا جوارهش بیاد خون هرچی تو بدنشه از گردن بریدش میاد بریزه خون آهو بعد آهو رو میگیرن اون خونها رو میشورن اونها کثیفه میشورن میره خب بعد آهو رو شکمش رو باز میکنن دو قسمتی از شکم آهو نافه آهو کیسه کوچیکی. یه مقدار خون لخته شده چشمه نافعه یه مقدار خون لخته شده است. اونو رو می خوش میکنن میساون میشه بوی خوش داره اون خون لخته شده هم اگر به بازماشگاه مثل اون خونهایی که ریخ رو زمین رفت اونها گلگول سفید داره گلگول قرمز داره هموگلوبین داره پلاسما داره خونه هیچ فرق ندارو در خون بودن اما اون خون تو نافع آهون بر میدارن قشنگ حسابی یه ذرش هم نمیذارن بمونه خشکش میکنن میساوند میشه میشه بگه خوش داره اما بقیه خون ها چی؟ عمل رو میشورن میدارن اون ارزش نداره اون یه ذره خون ارزش داره همه شون هم خونن و ان زیرا مشک قسمتی از خونه است اگه بگید چی به چی تشویق شد این آقا تشویق شد به مشک درست شد که اون قسمت ارزشمند خونه است بقیه مردم تشویق شدن به بقیه خونه که ارزشی نداره اونها رو همه رو تازه سر و ته میکنن حیوان رو وقتی سرش می که هرچی هست بیاد بیرون هیچیش نموند می و میرن فا این للمسک بعض و دم درست خب فهمیدیم این خواهی میگه یقولو لا عجبه ال فزلتن ناسه میگه هیچ تحجب نیست که تو بر بردم برتری جویی برتری یابی و انت واحد دون بین که تو یکی از همونهایی فا این لبعزش شی قد یفوق جملته زیرا بعضی از چیزها بر کلشون غلبه پیدا میکنن برتری پیدا میکنن بعضی از یک چیز گای و برتری میوبت بر مجموعش اش چون داشت کلمسک فانه بعض از دام الغزال و هو یفصلو مثل مش که قسمتی از خون آهوس ولی خیلی نسبت به او بگی برتری داری. او پنج تا مثال خونده حالا میایم سر متن درسی نگاه کنید توی بحث درس تو بحث درس یه نکته وجود جد داره البحثم مثالها که ستا هست نکنید میگه قد ینهو الکاتبو ینهو یعنی یدتجهو گاهی اوقات گرایش پیدا میکنه تمایل پیدا میکنه الکاتب یک نویسندهی اول شاعر یا یک شاعری اول خطیب یا یک خطبگوی اول المتکلم یا یا متکلم خلاص انسانی که داره حرف میزنه حالا کاتب و شاعر چون نصر نویس و نظم نویس سرآمد آمده و نویسندگانند بیان کرد قد و الکاتب و اول شاعرون من هنمن الولاغاته گرایش پیدا میکنه به یک منطقه از بلاغت به یک جهتی از بلاغت منها یعنی جهت قد یتجه و الکاته بو او شاعره جهتا من بلاغت قد یهو الکاته بو او شاعره منحن من بلاغت میره به طرف یک مخته از بلاغت یوها فیه به تشبیح یوها یعنی اشاره شده اشاره شده در اون جهت به تشبیح من غیر عن و سر بدون اینکه تصریح شده باشه به تشبیه. من غیر عنی و سر, عنی و سر فی صورت من صوره المعروفه. بدون اینکه که شده باشه در شکلی از اشکال معروفش. خب میره به طرف تشبیهی که به شکل مشهور تشبیهی نیست. چرا این کارو میکنه؟ اصلا ما چرا تشبیه زمنی میاریم؟ م? چرا تشبیه زمنی میاریم؟ میگه یفعل و این کارو انجام میده از تشبیه سریح ادور بکنه به تشبیه زمنی یک دلیل اول مفهولون لحیه یفعل و زالک نزوان علال کار نزو یعنی انگیزه داشتن به جهت انگیزه داشتن به ابتکار، میخواد نوآوری کنه. پس اولین غرض در تشبیه زمینی اینه که من مثل مردم عادی تشبیه سریح نمیگم میخواد نوآوری کنم، یه تشبیهی بگم که جدید است، نو است. نزوعاً الی ابتکار یک. دوم و اقامتا لدلیل علال حکم لذی اسنده اصندهو علال دوم به جهت اقامت کردن دلیل و برهان بر حکم مطلبی که نسبت داده به مشبه که گفتیم مطلب قریب گفتیم من میخوام دلیل بیارم بر اون چیزی که به مشبه نسبت داده پس اولی نزو ان علال ابتکار دومی اقامتن لدلیل سبومی دلیل سوم و رقبتن فی فاید تشبیل رقبت با فی یعنی تمایل داشتن دوست داشتن رقبت با ان رقبه انهو یعنی ازش بیزار شد رقبه فیه یعنی بهش علاقمند شد رقبتن فی فاید تشبیل به جهت اینکه تمایل داره که تشبیهش رو مخفی کنه تا شما حلش کنید شما تشبیه رو از دل اون کشف کنید مثل جدول که حل میکنه وقتی حل میکنه یا یه معمای یه پازلی رو حل میکنه یه خوشحال چقدر خوش این اینم تشبیهش رو پنهان کرده وقتی شما شعر رو فهمیدی تشبیه رو متوجه شدی خیلی خیلی خیلی خیلی سرمست میشی کیف میکنه از این چرا چون احساس میکنی یک رمزی رو باشد یک گرهی رو باز کرد رقبتن فی اقفال تشبیح چرا میگه به این دلیل نعمت کل کلما دقه و خفیه زیرا هر تشبیح هر چقدر دقیق باشه و پنهانتر باشه کان عبل و, و عفلق نفس خیلی بلیغتره و خیلی افعال کاراتره به نفس یعنی در نفس مخاطب خیلی اثرش بیشتره چرا چون مخاطب وقتی حلش میکنه احساس و شادمانی ده برامر بشترست نهانت کل ما درقه و خفیه کان عبله و افعاله به نفس خیلی خیلی بهتره در نفس شنوند خب حا چند تا در از وجود داشت برای اینکه ما رفتیم سراغ تشبیه زمینی سه تا یکی نزوع عن الابتکار دوم اقامتا لدلیل سوم رغبتن فی اخفاء تشبیه اینا غرازیه که ما رفتیم ولی چرا باید تشبیه صریحو ول کنیم بریم معما درست کنیم این سه تا دلیلش حالا نگاه کنید پنج تا مثال من براتون زدم قاعده رو خوندم دلیل تشکیه زمنی رو بیان کردم سه تا هم مثال تو کتاب آورده میشه هشت تا دو تا همتون نموزه هست میشه ده تا دیگه پنجات تا مثال هم بزنید خود معمولا یک درس موتونه نزمونه هستم که میخونم دوش معمولا ده تا بیت رو آدم میتونه بیان کنه ببینید چقدر ما از شعرهای مختلف داریم همینطور بیان الامثلتو. مثال اول قال عبو تمام آقای عبو تمام گفته به معشوق خودش میگه میگه لا تونی کری لا تونی کری اطلال کریمه من الغنا الغنا یعنی ثروت عتل یعنی لخت بودن آری بودن اما لخت بودن و آری بودن از زیور زیورالات یک کسی برهنه باشه از زیورالات زیورالات نداشته باشه این عطل مشخص شد برهنه بودن آری بودن از زیورالات میگه لا تونی کریم انکار نکن قبول کن اطلال کریم عاری بودن و توهیدست است بودن انسان کریم رو از ثروت اول سعدی آزادگان توحیده هستند قبول کن آدم کریم آدم حاتم تایی خیلی ثروتمند دیده نمیشه کریمان توحیده هستند دینو قبول کن زیور و ثروت زیاد ندارند کرم تا دلت بخواد دارند اما برج و کاخ و بارو ندارند قبول کن خوبی این هم کریم دازه به دیگران میده شکم دیگران سیر میکنه چطورتون خودش نداره میگه لا تونی کری حتلال کریمه منرغنان <تصفح> میگه زیرا این فواهر بشمیان فای تفریع تعلیل نتیجه زیرا چه از سیلو هربون دل مکان الانی هرب یعنی محارب این نی هر بون لمن هاربکون یعنی محارب فسیل هر مستر دنال میگه زیرا سیل. سیل سر جنگ داره با جایی که بلند است کوه شما کوه را نگاه کنید اول باران و آب و اول برف کجا می نشیند آن رو کوها این کوهان که اولین اونها از همه بیشتر دارن برف و باران ولی شما آب که می خواید پایین دره یا میرید بالای کوه. برابر داشت. پایین دره تو دره ها معمولاً چشمه هست و رود هست و آب در جریان یا یه متر بکنی به آب می رسی. اما این آب از کجا آمده از بالای کوه. کوه انگار اون بالا این پایین رو دیده سرازید کرد میگه همانطور که کوه مکان عالی منشق و سبب داشتن آبه و آب از اونجا نشعت میگیره ولی خودش آب ندارد انسان کریم هم همینطوره ثروت از اون نشعت میگیره ولی خودش از سروت است آدم های غیر کریم مثل ته دردن که از جای دیگر هم که اگر برسد اون رو قایم میکنن ثروت رو در نزد اونها میبینی همونطور که آب رو ته دردن فسیلو دو جز داره جزء دوم دلیل و برهانه که میره با فای نتیجه فای تفریع، تعلیل، سببیت گفته میشه آورد فسیلو هر دل مکان الاد. نباکنه العتل الخلوب و منل خلیگه. یعنی خالی بودن از زیور زینت. خب اینو خوندید الان بیاید توی بحث. میگه انظر به بیت عبی تمامه. یقول الهو یقولو من یو خاطبها. آقای عبو تمام میگه به کسی که امرو مورد خطاب قرارد. لا تستن کری خلو بر رجل کریمه من نا بعید ندون خطوهی دست بودن انسان کریم رو از ثروت چرا؟ ان نزالکه لیس عجیبا این اصلا عجیب نیست یه چیزی نسبت داد به مشبه که انسان کریمه اینکه که من نیست توهی دسته میگه این عجیب ندون نیست عجیب چرا لعن قمم الجبال زیرا قلهای کو قمم جمع قمه یعنی نه لعن قمم الجبال و هی اشنافل عماکنه و علاها لا یستغرفی هاماسته زیرا قلهای ها که اشرف عماکن هست و بالاترین اونها لا یستغرفی هاماسته توش آب سیل ها آب سیل اونجا جاری نمیشه سیل همیشه پایین درست در اما سیل که میاد سیل مال کی بوده؟ مال قلعه بوده لایست در رفیه ها ما سیل علم تلمه هون شما احساس نمیکنید کنید اینجای ای هست؟ علم ترا انهو یشبه شد به آیا نمیبینید که او تشبیه کرده به طور زمینی ار المحروم الغنا انسان کریمی که از ثروت محرومه تشبیه کرده به قمت الجبل به قلعه کو و خلت من ماء سیل و حالا که از آب فراوان آب سیل توهید است ولیکن نهو لنگی از از ولی ما نگاه که میکنیم میبینیم این نیمده تشبیه رو به طور سریح قرار بده نه بگه که الکریمو کل قمت اینطور نگفته. فی عدم ثروته. اا اینطور نگفته. و لاکنه له لم یز زال کسریان، بل عطا به جملت مستقل ده. بلکه یه جمله مستقلی آورده و زمن و هاذر معنا فی صورت برهان. و در لا همین مطلب رو بیان کرده به شکل برهان و دلیل. ام. هم ابتکار توشه نزوانه لطفکار هم دلیل توشه اقامتا لددیل هم تشبیه مخفیه وقتی انسان شعر رو میفهمه و میفهمه چی به چی تشبیه شده کیف نکنه و رقبتاً این مثال هم. مثال دوم ایشون نگاه کنید میگه قد یشی بول فتا قد یشی بلفتا شابه یعنی پیر شد شعب یعنی پیری قد یشی بلفتا فتا یعنی جوان میگه گاهی این قد با اصل فرمزار یعنی گاه قد یشی بلفتا گاهی اوقات پیر دیده میشه انسان جوان و خب پیری رو چجوری میشه ببینی تو جوان به اینکه موی سرش سفید میگه گاوها شما نگاه کنی. یه نفری مثلا سنی نداره 20 سال 5 سال اما سرش تارهای سفید موی سفید توش پیدا شده میگه گاهی اینطوری. خیلی عجیبه دیگه نه اینکه جوان پیر چرد بکنه جوان پیر دیده می شود گاهی یه امر عجیبی رو نسبت داد که گاوهاس موی سفید در سر جوان پیدا میشه سر جوان با سیاه باشی میگه و لیس عجیبا خودش ببینید میگه میگنی عجیب نیست چی عجیب نیست لیس عجیب خبر خوال است، انیورا اسم لیس است. عجیب نیست انیورا نورو فلغذیب رتیبی قضیب یعنی شاخب. رتیب یعنی تر و تارزه با رطوبت میگه شما تعجب میکنید اگر یک شاخه تر و تازه یک درختی رو یک شاخه که کاملا شاداب و تر و تازه است ببینید شکوفه سفید زده نه شاخه تر و تازه شکوفه سفید میزنه مثل شکوفه باداب مثل شکوفه گیراس آلوالو آلو این شکوفه هایی که شما می‌بینید بر روی شاخه های تر و تازه و جوان پیدا شد در تعجب است. اگر این شعر رو نگاه کنی چی رو به چی تشبیه کرد؟ سر انسان جوان رو تشبیه کرد به شاخه تر و تازه پیدا شدن موی سفید در اون رو تشبیه کرد به پیدا شدن شکوفه بر روی شاخه تر و تازه تشبیه اما جز دوم دلیله که همونطور که آدم از شکوفه بر روی شاخه تر تازه تحجب نمی پس بنابراین از پیدا شدن موی سفیدم بر سر انسان جوان تعجب نکنه قد یشیب بلفت ولیس سعجیبا ان یور ان نورو ان نور یعنی شکوفه یورا دیده می شود این دیده شود ان نورو فلقذیب در شاخه تر تازه. حالا بیاد نگاه کنیم این آقای ابن رومی که گفت که قبلن هم بودم شاعر تشبیه. این تشبیهات خواست. و یقول ابن رومی ان نشاب قد یشیب. ابن رومی میگه گاهی اوقات جوان پیر میکنه و ولم تتقدم به سنو. و حالان که سنی ازش نگذشته جوانه. و این نزالکه لیسته عجیبه. و این مطلب بسن عجیب نیست. فان القصن الغز زیر شاخه تر و تازه الرتب شاداب شاخه قز و شاداب و رتب تر و تازه قد یظهر و از زهر و است گاهی اوقات توش پیدا میشه شکوفه سفید فابن الرومی هنا لم یعته به تشبیهن سریحن ابن الرومی اینجا از تشبیه سریع استفاده نکرده فنه ولم یقل او نگفته که ان الفتا اینطوری میگفت مشو داشبیه سری ان الفتا وقد وخت الشیب جوان وقتی که پیری او رو فرا بگیره ها و خت از جوان در حالی که پیری او رو فرا گرفته کل قسن عرلتیبه مثل شاخه تر و تازه این اظهار موقعی که زهر رو شکوفه بود این اظهار موقع شکت ز اگه اینطور گفته بود می شد داشت بیشترری مشب بعد داشت مشب به داشت و مدش بچ ولاکن نهو ات که ضمننه و این رو به شکل ضبنی بر اینم مثال بعد مثال سوم مالعببد تگییه متنبیس متنبیست که چند تا مثال من ازش خوندم این هم یه دونه پیدا قش میگه من یهون یاسو هو له هوانو یهونو خانه یهونو مسترش هوان خانه یهونو هوانن یعنی خار شد خانه یعنی خار شد یهونو خار میشود هوانن یعنی خار شدن من یهون یه سهوله لحوانا علی من یهون یه سهوله لحوانا علی هر که خار شد خاری بر او آسان میشه این آدم که تو سری خور شد خار شد خار شدن بر او آسان میشه میگه الان مثلا یه نفر آدم عزتمنده آدم با شخصیتی تو میگن سکته میکن وشب نواحت میشه این به من تو گفته اونطوری به من بی احترامی شد عزت من فلان شد با شخصیت و یه نفر آدم بی شخصیت تو سری خوره، آدم پستیه بهش خوش میدن هرچی میگه میخن این خیالشه میگه من یهان هر خیخ خار میشه یس حول الهوان و خاری و برش آسون میشه خاری و زلدت بر اون آدمی که عزت داره سخته بر این آدمی که خار و زلیله خاری و زلدت آسونه میگه این نگاه که وش بش میده میخنده تو سرش میزنم این خیالش نیست اینو گفت یه چیزی نسبت داد که خاری و زلدت بر آدم خار و زلیل آسان است آخه خاری و زلت چجور میشه آسان بشه این عجیب مثال میزنه دلیل میاده نگاه مال جرهن به میتن ایلان جره یعنی زخم زدن جراحت جره و جراحت یک میت یعنی مرده ایلان اولمه یولمو ایلامن یعنی درد آورد اولمه یعنی درد آورد ایلام یعنی درد داوردن به درد آوردن هستر بابی میگه مال جرهن زیرا جراحتی که به میتن مال میت باشه در میت ایجاد بشه مال جرهن به میتن ایلامو جراحت زدن به میت درد داور نیست لجوهرین خبر مقدم ایلامون مبتدا مؤخر به میته به میته متعلق بشور جراحت زدن به میت برای جراحت زدن به میت درد آوردنی نیست ما ما مشورتون به از جای اسم و خبرش عرض بشه دیگه عمل خب چی گفت گفت انسانی که خوار و ذلیل بشه خاری و ذلت آ برش سخت نیست زیرا زیرا جراحت زدن به میت برای او دردآور نیست اگه نگاه کنید اینجا چی به چی تشویه شده انسان ذلیل تشویه شده به مرده توهین کردن به انسان زلیل تشویه شده به زخم زدن به میت انسان عزیز و از ذات تشویش‌بر انسان زنده توهین به او مثل زخ زدنه انسانی که زنده است ها یک خار کوچک تو چشمش بیفته خودشو میکشه این چه ولی مرده شما سیخ بکن تو چشمش دردی احساس میکن. مال جرحن به میتنی را انسان زدید رو تشبیه کرده به مرده که انسان زدید همچو مردست است انسان زلیل مثل مردست مال جرهم به میتند دیدا جراحت زدن به مرده دردآور نیست او نگاه کنید مطلب میگه که ریغول و یقول ابو جناب آقای عبود تیب میگه این نلزی اعتاد الحوان کسی که عادت داره به خاری و پستی یه از خول علیه تحملو برو آسان از تحملش ولا یه تعلم اصلا دردی هم نسبت بوده احساس نمکن ولای سرها ازال ادعا و باطلها این ادعا باطل نیست غلط نیست نه المیت ازا چوره زیرا میت موقعی که جراحت به وارد بشه لایت یتعلم در احساس نمون و فی که تلمیهون به تشبیه فی غیر سراحت در این عبارت شما اشاره به تشبیه رو میبینید بدون این سراحتی داشته عبیات سلاست در این بیت های سگانه تجد و عرکانت تشبیه شما عرکان تشبیه رو میبینید و تلمه و اون رو احساس میکنید و لا تجد فی من منصور حتی عرفتها. ولی این ارکان رو در شکل هایی که شما دیدید از اشکال تشبیه نمی بینید پنهانه. و حاضای و سم ما به تشبیه ظلی اینشم تشبیه و فلویات سلاسته تجد و ارکان تشبیه و طلقو و لا تجدهو فی صورت منصور حتی رفته ها بحاظا یو سممه به تشبیه سکل کنم مالی سه تا هم اینجا خود دو تا مثال توی نموزجش زده نگاه کنید بازی پیش متنبیه آج دیگری هم متنبیه, متنبیه دیگه میگه که و اصبح شعری من هما فی مکانی میگن سر جاش واقع شد دیدید میگن نمیگن این سر جاش نشست یعنی جایی که حقش بود لایقش بود هر چیان سر جای خودش باشه زیباست تو این بت میگه در مورد یک خلیفه میگه و پدرش میگه اسبه شعری یعنی سار شعری اسبه یعنی سار. شعر من گردیده است نسبت به این دو نفر پدر و پسر فی مکانهی در جای خودش خب هر چیزی سر جای خودش باشه چیه زیباست ببینید الان اگر یک کسی بیاد مثلا شعر در حضرت ابوالفضل بگه و اون شاهکاری که از حضرت الله در راه خدا تو کربلا کرده شعر او این جایگاه زیبا رو داره این جایگاه زیباش یه رووگه هم کال داشت و میبردش بالا شعر قشنگه اما اگه مثلا بیاد این شعر رو در راه تو یکی از ظالمان امروز روزگار میگه جایگاه جایگاه در زیبانشون دادن تأثیر داره میگه شعر من قشنگ بوده اما این جایگاه قشنگش که این پدر و پسر هستن اونو ده برابر کرد زیبایش اصفح شعری من فی مکانه شعر من نسبت به این دوتا در جایگاه واقعی خودش واقع شده. چی نسبت داد گفت شعر من زیبا بوده ولی چون جای زیبا واقع شده زیباییش جنوه گریش بیشتر شده خب عجیبیه. میگیم چطور جا مکان تأثیر داشته باشه در زیبایی شعر میگه نگاه کن مثال میزنه وفی اونوگل حسنا یستحسنور اقدو اقد یعنی گردم بند یستحسنه یعنی زیباشون مرده میشه اوناغ یعنی گردن حسنا یعنی المر عطلحسنه زن زیباروی نگه در گردن زن زیباروی است فقط اوناغلحسنه مطلق یستحسنه هست مقدم شد و مفید حسره یعنی فقط گردن زیباروی هستش که یستحسنه رخون کردن به هم زیبا جل یعنی کار شاهکار گردنبندی از زیبا کار خیلی خوب درجه یک این را میارن گردن یک زیبا روی درجه یکی که مودله میدازن و این رو تبلغ میکنن خب تأثیر داره زیبایی اون گردنبنده جلوه جلوگریش بیشتر میشه حالا اگر اینو رو گردن یک آدم زشت پیری بنوزن هم؟ آیا همین تأثیر داره؟ میگه شعر منم همینه شعر من چون در وصف این پدر و پسر بوده و این دوتا پدر و پسر لایق هستن شعر من جلوه گریش بیشتر شد همونطور که در گردن زیبا روی گردن بند جلوه گریش بیشتر میشه و زیباتر دیده میشه شعر خودشو تشبیه کرده به گردن بند زیبا نگاه کنید میگه ای اسبه شعریفی مدهل امیر و عدیه در مده این امیر و پدرش فیل مکان لایق به در جایگاه شایسته خودش واقع شده لذا زیباییش بیشتر شد لعنه هما احلون لسنه چون این دوتا اهل و شایسته سنه هستند روش اهل و شایسته سنه هستند فستوه سن وقع و حوفیه ما فست نیکوشو مرد شده واقع شدن این شعر در مورد این دوتا پدر بسند کما یسته سنال اقدفی اون اقل حسنا همانطور که زیبا جلوه میکنه گردن بند در گردن زن زیبا نگاه کنی تو آن مزجشم میگه میگه حال و شعر یستنا بهی علال الکریم فیزداد و شعر فیزداد و شعر و جمالا به حسن موزعی تشبیه شده به حال اقدس سمین یزداد و به ها اون حسنا زیادت و جمالشه زیادت و ل جمال موزه تشبیه تشبیه زیادیست اگر می و با قول خودمون تشبیه عادی می کرد مشبه مشبه آمده این طور نبود تو جز اول یه چیز نسبت داد تو جز دوم براش دلیل و برها بعدی رو ببین باز متنبیه کرمون تبین فی کلام که میگه کرمان یعنی کرمان عظیمان کرم یعنی برتری نجاد پدر و مادر داشتن فرسون کریم اسب کریم به عصبی میگن که نژاد خالص داره برتری نجادی داره ساز نجاد اسب درجه یکی پلا میگه پدر و مادر داشتن با نجات بودن تبینه فی کلامه که ظاهر است در سخن تو ماسلن یعنی مجسمن به تو مجسم میگه تو حرف که میزنی همین تو باز میکنی چند تا کلمه که حرف میزنی اون با نژاد و اصیل بودن و شناسنامه برتر داشتن در کلام تو کاملا مجسم چیزی نسبت داد به مشبه گفت چی گفت سخن تو بیانگر برتری نژاد توست پدر مادر داشتن و اصیل بودن و آه با نژاد بودن تو کرم و کرمان نکره دلالت و تعظیم میکنه یعنی کرمی این نژادی برتر تبیین یعنی زهر ظاهر است فی کلامک در سخنتو تو حال است از فایل بهطور به طور مجسم در حالی که کاملا معلوم میگیم چطور میشه که حرف که یک سری حواست و الفاظست و یعنی حرف به جای بند نیست چطور میشه که حرف که میزنه دلالت میکنه بر اصل نجادش این که نجاد برتر میگه این مثال می و یابین و اتقل خیله من اس ها ات یعنی غ کرم فرون عتیق ها؟ یعنی اسببان نژاد فرون کردیم یعنی اسببان نشاد مترادف. میگه یابین و اتقل خیل یعنی کرممال خیده ظاهر میشه نژاد برتر اسب بان من اات ها از هایی که اسب شناس هستن میخوان عصفی رو از یابو تشخیص بدن که این اسب چقدر عرضش داره اسب درجه یک و فلان و غیره یه دستی زیر این پوزه اسب میزنن یه عصف باش بلنم که یه شیه میکشین این شیحه رو که میکشین میفهمن این اسب چه نژاد چه نجاده داره آیا اسب درست ساویه یا یابوه دو باری بست میگه همونطور که صدای اسب بیانگر نژاد برتر اونه آه. صدای تو هم نجاد برتره تو رو کلام تو هم نجاد برتره تو رو سخن او که دلالت بر این مطلب میکنه که او با نجاد است از نجاد نسیده تشبیه کرده به صدای عصب با نجاد. خب این مشخصه دیگه چی میشه؟ ممکنه شما یه سوالی به ذهنتون برسه که خب این چه جور خلیفه رو میگه صدایتون مثل صدای اسب. اولا در تشبیه این نیستش که تشبیه کرده خلیفه رو به صدای یعنی به اسب. بلکه صدای خلیفه که دلالت بر نجاد برتر میکنه به صدای اسب با نژادی که نژاد برتر نشون می‌ده. در این بحث مثل این که شما یکی کس رو تشبیه به شیر می‌کنید در جوارح دیگه در بقیه چیزهایی که تشمیل نمی کنیم. درست شد؟ در اینکه درنده هم هست، بوم هم داره، حیوان هم هست، دهانه بعد داره، شکم کوچک داریم، چیزهایی که دیگه تشمیل نمی کنیم. اینم همینطور این یه مطلب. مطلب دفعه می که این چیزی که الان ما داریم می به حسب با که به درجه یکی که شیهه میکشه و نشاده برترشونشون میده این در واقع اون زمان مثل این بوده که الان بگیم وقتی تو زبونتو باز میکنی حرفی رو میزنی معلوم میشه تو قیمتی هستی و با نژاد هستی مثل این که یک بنز درجه یکی بوق بزنه خب صدای صدایو رو تشمیح بکنی به بوغ بهست یعنی اینه این اسب تو اون زمان همین نفشه باشده از بنابراین توش تحفیر نیست یقول من سم اکلامه که عرفم ها کرم اصل. کرم اصل تو رو از این میفهمه کما یعرف و الفرسول عتیق و و من سهیله همونطور که اصل با نجاد از بگید صدای او شناختش اینم دهمین ده به قول خودمون ریتی بود که من برای شما در تشبیه زمینی خوندم تشبیه زمنی خیلی سخت نبود یاد گرفتید یه یه هاشیه باقی مونده و یه مطلبی که انشالله که آینده خدمتتون خواهم خوند بعد وارد اغراض تشبیه میشیم اغراض تشبیه رو با هم بحث میکنیم که اصلا ما تشبیه میکنیم زمان چیست پس بنابراین تشبیحات قبل و یه مقال نگاه کنید که ما وقتی اعبارازش رو میخواییم برای شما بگیم براتون قابل استفاده باشه. و الله علی نوی نوحاله تاهرین موفق و معید و منصور باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات